مطالعه یک گلوب هاس و همکاران کار هافستید را بست و افزایش دادند این مطالعه رابطه خصوصیت های رهبران سازمانی 62 کشور با فرهنگ آن کشورها را بررسی کرده است عنوان این مطالعه اثر بخشی رفتار رهبری و سازمان در جهان یا گلوب است و 170 محقق از خود کشورها در آن دخالت داده شدهاند. فرهنگ در این مطالعه معادل ارزشها، ها و باورهای مشترک و معانی و نمادها و خاطرات و هویت جمعی در یک سازمان و یا جامعه تلقی شده است. جامعه آماری را آن بخش از مدیران سازمانها تشکیل می داد که در سطح جهانی و بین المللی و در حوزه بانکی، مخابرات و صنایع غذایی فعالیت می کنند. کشورها به ده خوشه از قبیل آنگلوساکسون اروپای نوردیک، اروپای شرقی، اروپای ژرمنی، اروپای لاتین، مثل ایتالیا، فرانسه، پرتغال، اسپانیا و غیره که در این مطالعه اسرائیل هم جزو این خوشه محسوب شده است، آمریکای لاتین، کشورهای جنوب صحرای آفریقا، خاور میانه، آسیای کنفوسی و آسیای جنوبی که شامل ایران است خوشه بندی شدند. 17300 پرسشنامه میان مدیران 951 سازمان توضیع شده است و در پی پیمایش و آزمون هفت فرضیه از روش کیفی نیز برای تعمق بیشتر استفاده به عمل آمده است. مطالعه گلوب برای تفاوت فرهنگی سازمانها و جوامع تعداد نه ملف منظور کرد و در آن برخی شاخص های نیز ویرایش شد. جاویدان و دستمالچیان در ارتباط با این پروژه فرهنگ مدیران ایرانی را پیمایش کردند در داخل کشور نیز با استفاده از شاخص های فرهنگی گلوب تحقیقاتی در سطح سازمان مختلف انجام گرفته است مانند زارعی متین و همکاران در وزارت اقتصاد و دارایی، تسلیمی و همکاران در سه صنعت خودروسازی بازرگانی و نیروگاهی ولیپور و همکاران در وزارت های کار و امور اجتماعی، نفت، اقتصاد و دارایی، باباشاهی و همکاران در پژوهشگاه صنعت نفت و الینیای لاکانی و قدمی در راهسازی. در این مطالعات پیمایشی پاسخگویان شامل مدیران یا کارکنان این یا آن دستگاه و سازمان بودند و نتایج مختلفی به دست آمده است. مطابق این مطالعات فرهنگ مدیران و کارکنان سازمان ها و صنایع پیمیه شده در ویژگیهایی مثل فرهنگ دوجنسیتی، خواست برابری مخاطر پذیری تعهد عملی به منافع جمعی رفتار نو و همیارانه، خودبیانگری و جسوری و جهگیری درازمدت مدت پایین یا تا حدی پایین متوسط است فرهنگ جمعگرایی درون گروهی بالاست که میتواند همزمان از این شاخص نشانه های امیدوار کننده مثلا برای فرهنگ کار تیمی و گروهی و نشانه های نگران کننده مثلا برای فرهنگ حامی پرور گرفت. اما میل به موفقیت و پیشرفت از طریق عمل در این پاسکویان تا حدی در خور توجه بود که حکایت از ظرفیت در فرهنگ ما برای پیشرفت دارد. 7 رهیافت گرا و خلق گرا. در این دسته می توان را قرار داد که خلقیات و زبان و فرهنگ و روانشناسی قومی را با نظر به موقعیت های زیست اجتماعی آنها توضیح می دهند. فرهنگ یک جامعه از الگوهای جمعی و مشترک زندگی مردم از الگوهای معنادهی، فکر کردن، زبانورزی و عمل آنها ناشی می شود. یک نمونه از این دست را در هافتون می‌بینیم. یک بررسی درباره فرهنگ ایرانی را با همین ره یافت ویلیام بیمن انجام داده است. بیمن از طریق کار در شرکت نفت با دشواری‌ها و ساخت زندگی ایرانیان ساکن در مناطق نفت‌خیز و در سایر مناطق کشور حشر و نش یافت و با نظر به این موقعیت‌های زیست ایرانی سعی کرد تا به فهمی از فرهنگ و روحیات و زبان و مناسک سنتی آن نزدیک بشود در اینجا به جای تقلیل دادن یک فرهنگ به قواعد خشک جهان شمول سعی می‌شود تفاوتها و تمایزها و تنوعات فرهنگی ملت‌ها بر حسب موقعیت‌های مختلف زیست آنها دیده بشود برای مثال زبان ورزی ایرانیان نسبت به دیگر زبان‌ها مانند مردم ژاپن تفاوت‌هایی دارد وقتی ایرانیان با جاپونی ها دو تاریخ و دو جغرافیا و دو موقعیت زیستی و سرزمینی متفاوت دارند، روحیات و فرهنگ آنها نیز طبعا متفاوت است. تفاوت موقعیت های زیست اجتماعی سبب می شود که الگوی زبانورزی در یک جامعه تا حد زیاد عینی باشد و در جامعه دیگر الگوی زبانورزی اقتضایی ببینیم. در الگوی نخست هرکس به گونه ای سخن میگوید که از او به عنوان یک قاعده زبانی مشخص انتظار می رود و همه جا به یکسان قابل پیش است این نوع زبانورزی نتیجه زیستن در موقعیتی است که ویژگی های خاص دارد مانند تراکم جمعیتی به صورت زندگی رو در روی مردم. تاریخی تا حد زیاد متداوم و شرایط نسبتاً با ثبات فشردگی پیوستگی، پایداری. اما الگوی اقتضایی زبان برعکس در جوامع ای پیدا می کند که موقعیت زیست آنها کمتر رو در رو، کمتر پایدار و تا حد زیادی بی است. در نتیجه زبانورزی در چنین جامعه خیلی هم اینی و بر حسب قواعد قابل پیشبینی نیست. هرکس بر حسب اینکه بنا موقعیت موقعیت‌های متفاوت و ناپایدار چه نوع طرز سخن گفتن و کدام تعابیر میتواند کارایی داشته باشد از زبان به عنوان یک ترفند اکتشافی و اقتضایی بهره می‌گیرد افراد در هر موقعیتی به گونه‌ای سخن میگویند که به دردشان بخورد یعنی ترفندهای گونه‌گونه‌ی زبانی وجود دارد و مسیرهای کلام معمولاً چند گزینه‌ای است برای اینکه از کسی بخواهیم بنشیند انواع واژه ها وجود دارد. زمیر اول شخص مفرد را حسب موقعیت ها به صورت های مختلفی به کار می گیریم. ما، من، بنده، چاکر، غلام این جانب، ارادتمند، فدوی، خاکسار و غیره. همانطور که فعل خطاب در مصدر گفتن حسب موقعیت ها فرق می کند. بگو، بگویید، بفرمایید، در خدمتم، بگوشم، گوش میدم، ده حرف بزنید بگید بنال جانم چی میخوای بگی و غیره به من در کلاس درس استاد در محیط های علمی دکتر میگویند تو از دانشگاه پایم را بیرون میگذارم، حاجی یا عمو خطاب می وقتی کارگر محترمی را برای حل مشکلی در منزل دعوت میکنم بنده را مهندس خطاب میکند و گاهی با تعابیر دیگر مثل داداش قربان هی آقا عزیز یا مستر خطاب میشوم بدین ترتیب، ساختار زبانی ما پیچ در پیچ و لایه بلایه است. در او ابهام و استعاره هست. واجه عشق در حافظ از فرش تا عرش در نوسان است. از ناسوت تا ملکوت. سوور خیال هم ما را تا اوج های معنوی و ارفانی استعلا می دهد و هم در تنانه ترین بخش وجود ما ریشه کرده و به دل هایمان چنگ زده است. الگوی کارایی سبب غیرقابل پیش بینی شدن ارتباطات کلامی می شود ولی در همان حال چنین زبانی خلاق و منعطف نیز هست راهبردهای زبان مختلفند راهبردهای ارتباطی مختلفند دانشجویانی پیش من با من صحبت می کنند و در جلوی چشم من با دوستانشان طور دیگر و با قواعد دیگر صحبت می کنند کاملا با دو نوع ساختارهای صرف و نحوی تعارف در زبان ما از این ترفندها و انعطافها ها و اکتشافهای اقتضایی ناشی می شود اگر کسی فرهنگ زبانی ما و موقعیت زیست ما را نفهمد فکر می کند دروغ میگوییم یا تملق می کنیم صادق نیستیم و یا می خواهیم سر کسی کلاه بگذاریم اما لزوما هیچ یک از اینها نیست این یک نوع زبان ورزی است که از طبیعت زیست اجتماعی ما برخاسته است همه میفهمیم که با هم چرا اینطور صحبت میکنیم؟ ما و زبان ما بخشی از جهانی است که درباره‌اش سخن میگوییم. ویلیام بیمن به زبان ایرانی از منظر انسان شناختی و زیباشناختی نگاه میکند. تعارف نه نوعی دروغ و فریبکاری بلکه نوعی مبادله احساسی با همدیگر است زبان ما بنا به سرشت خیش و به اقتضای زیست ما بس خیالنگیز است این یک گرایش خود ارجایی در فرهنگ ماست که می‌خواهد از ظاهر این عالم به باطن برود. زبان ما نیز مثل خانه‌هایمان اندرونی و بیرونی دارد و مابقی قصایا. زبان برای ایرانیان بیش از یک انتقال پیام ساده و مستقیم است، بلکه یک نوع هنر و زندگی نیز هست. یک مهارت، یک خلاقیت ارتباطی و ماهرانه است. یک ترفند برای زیستن است. حتی تنها برای زندگی کردن نیست، بلکه خودش نوعی زندگی است. یک وسیله نیست، هدف نیز هست. ما با تجربه خویش و با دانش ضمنی دیرین فرهنگی و اجتماعی برآمده از این زیست با هم صحبت میکنیم و فرهنگ شفاهی نیرومند متنوعی داریم. زبان هر قومی در یک بافت فرهنگی اجتماعی تکفیل میابد، و با حوزه نمادین و معرفتی یک جامعه و نظام باورها و الگوهای معنایی جاری در موقعیت زیست مردم پیوند وسیق دارد. برای مثال در زبان ما کنایه و استعاره و عناصر هیجانی و در پرده سخن گفتن و پیامی را به صورت غیر مستقیم رساندن شیوع بیشتری دارد و این برآمده از نحوه زندگی ماست. محققانی به بررسی ساختار کلامی ها و تعبیرهای کنایی فارسی با استفاده از روش تحلیل محتوا و تکنیک کریپندورف پرداختند. ساختار بلاغی زبان ما آکنده از رتوریک کنایی است. یعنی همانطور که تیپ شخصیتی ما چندان سریح نیست، تیپ رتوریک زبانی ما نیز بیشتر کنایی است. در تیپ خطابها نیز غالباً به طور غیر مستقیم سخن میگوییم مثلا از زبان حیوانات مینویسیم یا به در میگوییم تا دیوار بشنود و انتظار داریم عاقلان را یک اشارت ما کفایت کند شیوه بیان ما نیز بیشتر عاطفی و هیجانی است تا توصیفی تحقیقی که در فوق اشاره کردم تعداد 2271 مصر را با استفاده از منابعی مانند امثال و حکم دهخدا فرهنگ عوام امینی فرهنگ فارسی آمیانه نجفی و کتاب کوچه شاملو تحلیل محتوا کرده است. یافته نشان میدهد رتوریک کنایی و تعابیر و عبارت های پوشیده و در پرده با 68 و چهار دهم درصد خیلی بیشتر از گزاره های روشن و ناپوشیده است. همچنین طرز بیان غیر مستقیم با مقدار 6 ممیز 24 درصد بیش از بیان مستقیم است. همانطور که بیان ما بیش از اینکه توصیفی باشد عاطفی است برای شناخت عمیق از شخصیت ایرانی باید زبان ادبیات مسالها، استعاره‌ها و اسطوره‌های این فرهنگ و جامعه مطالعه جدی بشود تحلیل محتوای اسطوره‌های ایرانی می‌تواند دلالتهای خوبی برای فهم خلقیات و منش ما داشته باشد وقتی این زرب المثل را داریم که وفای هر چیز بیش از آدمی زاده است، این برآمده از تجربه های زیست در موقعیت های شکننده ناپایدار است و طبیعی است که به بدگمانی و کمبود شفافیت دامن بزند، اما مسئله ها که یکی دوتا نیست و باید همه آنها را با هم دید و لایه های مختلف آنها را فهمید و آنگاه میتوان درباره فرهنگ ایرانی سخن گفت. آثار مهم ادبی ما از جمله بهترین معاخذ و مستندات در این زمینه هستند. همچون شاهنامه، خمسه نظامی، تاریخ سیستان، تاریخ مسعودی، تاریخ بیهقی و تاریخ تبری. منابع عموماً شناخته شده ای درباره ایرانی وجود دارد مانند ترجمه متون عوستایی و یشتها از ابراهیم پور داوود. بندهشن و پژوهشی در اساطیر ایران از مهرداد بهار اسطوره زندگی زرتشت از جاله آموزگار و احمد تفضلی فرهنگ اساطیر و داستانواره در ادبیات فارسی از محمد جعفر یا حقی ملی ایران از تیودر نولدکه ترجمه بزرگ علوی کیانیان از آرتور کریستنسن ترجمه زبیه الله صفا شناخت اساطیر ایران از جان هیلر، ترجمه جاله آموزگار و احمد تفضلی و ایران از آغاز تا اسلام، از گشمن ترجمه محمد معین زیر آسمانه های نور، جسدارهای های استور و ایران شناسی و نیز از استوره تا تاریخ شامل آثار مهرداد بهار، و آین گنوسی و مانوی ویراسته میرچا الیاده از عبالقاسم اسمایل پور استور شناسی سیاسی، هنر، اسطوره قدرت از ناصر فکوهی و آثار متعدد تعلیف و ترجمه از استور پجوه بزرگ ایرانی جلال ستاری مثل جهان استور شناسی زبان رمزی قصه های پریوار استوره و رمز در اندیشه میرچالیاده و استوره عشق و آشقی در چند اشقنامه فارسی دلالت های بسیار ژرفی در متون کهان و استوره های ما هست که ممکن است از طریق آن به برخی رموز فرهنگ و خلقیات ایرانی بازکاوی بشود برای مثال ایزدبانوی ایرانی آناهیتا که سرچشمه اقیانوس کیهانی و خدای آب هاست و سرچشمه زندگی است هم از سوی قهرمان ها و هم ضد قهرمان ها ستوده شده است. اینجا شاید یک منطقه خاکستری برای گفتگو و قرارداد است و شاید سر نخی است که ما ایرانیان در لایه های ژرف فرهنگی خود ظرفیت های گفتگوی خوبی داریم و تاریخ ما با حوادث و صعبتهایش مانع از ظهور و پرورش آن شده است. بیشتر کارهایی که درباره امسال امثال و حکم ایرانی نیز انجام گرفته است در چارچوبهای نظری خاصی محدود شده است و هنوز نیازمند بررسیهای کیفی امیغتری در اسطورههای خودمان هستیم. فهم عمیق فرهنگی و انسانشناختی کمک می کند. ما بر کلیشه های سطحی در باب خلقیات ایرانی فائق بیاییم.